سلام دوستان عزیز من حسین مختارزاده هستم و اینجا ملبورن استرالیا قصد دارم یک بار دیگه با جناب آقای دکتر ریموند رخشانی استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا صحبت کنم اگه خاطرتون باشه در قسمت قبل صحبت کردیم در مورد مدرنیته و مدرنیسم ایشون پژوهش جدیدی رو انجام دادن در مورد مفاهیم دموکراسی جامعه مدنی و نقش رسانه‌ها قصد داریم بدونیم که این پژوهش جدید آقای دکتر به چه سمت سویی داره حرکت میکنه. آقای دور سلام. سلام بر شما. آقای مختار جان عزیز، چرا خوشحالم که دیگر بار صدای شما رو میشنومم. سلام به همه شنوندگانتون و همه این دوستانی که از راه های دور به صورت مجازی <تصفح> دقیقا. راه راهمو واقعا دوره. الان من توی ملبورن استرالیا نشستم شما هم در آمریکا در فیلم می کنم مونیکا. هست. یه فیلم می کنم یه حداقل 16 ساعت با حال ما رو الان افتادیم. زمانی هم 18 سال. زمانی ام آره یعنی ما الان من الان از آینده برای شما خبر میدم. اگه شما سوالی دارید و اگه اتفاقی افتاد تو سانس متقابل باش ما قیمتون میگم حتما. به هر خیلی خوش آمدین آقای دکتر. زحمت کشیدین. جلسه پیش را به مسئله خیلی خیلی جالبی صحبت کردیم. من به شخص خودم خیلی مطالب یاد گرفتم. دوستانی هم که به هر حال ایمیل میزدن و صحبت هایی که شد متحدش شدیم که واقعا علاقه شهیدی هست راجبه این که اطلاعات جدیدی رو در ارتباط با مسئله مدرنیته و مدرنیزم میشتر بدونند دوستان و بخصوص در این شرایطی که چاید ایران ما قرار داره یک جایی هست بین سنت و مدرنیته و حال همه مسائلی که درگیر اون هست شاید این مطاله واقعا جایگاه خاصی داره اگر لطف کنن ایرکتور راجع پژوهش جدیدتون با ما صحبت بکنید منظورتون از مفاهیم دموکراسی جامعه مدنی و نقشه رسانه ها چیه؟ به روی چشم آقای مبتار من داشتم در واقع توجهی کرده بودم به مباحثی رو که در مورد جامعه مدنی دست کم بعد از انتخابات سال 88 در ایران اتفاق افتاد ما با درصد بالاتری, بالاتری از مدنی رو مدنی روبروی هستیم و این منو در واقع علاقه کرد که نگاه کنم بیرم چی نوشن راجع این و چی میگن و هرچه نگاه کردم دیدم که جاهای شکاف های خیلی گوندهی هست در تعریف و علاقمند شدم برم به اون جنبش سالهای شست آمریکا برای آزادی های مدنی و نگاه کردم به کتاب ها و نوشته هایی کسانی که درگیره اون جنبش بودن و ببینم که تعریف از اون چطوری اتفاق افتاده و بعد دوباره برگشتم توی نوشته های خودمون دروقع اندیشمندان ایرانی و دیدم که نیاز هست که ما این مباحث رو برخی تعریف پایه امروزی و مدرن واقع آغاز کنیم وقتی میگم تعریف به این دلیل که دروقع برای حل هر موضوعی گام نخستین تعریفه یعنی اصلا اگه مشکل رو نتونیم تعریف کنیم نمیتونیم حل کنیم درسته. در منطق بهش میگن حد که شاید معادلی برای واژه پارادایم باشه که اونم زیاد داره جوزیاتش نشیم اون پراش از ریشه سانسکریت میاد به عنوان چیزی که محاته که ما توی زبانهای لاتین و غیره رفته شده مثلا پریسکو پریمیتر پریثری، تمام اینا اونش همونم پرست از توی سانسپریت اومده توی فارسی و اینا هست ما پرستنده پرستار پرگار پردیست و بخش دومش اون دئیگم یونانی یعنی تو شو در،, در واقع اون موضوعی رو که میخواهم به چیز بکنیم یه دایره ای می میزنیم و اون چیزی که در داخلشه در واقع نشون بیدیم درسته. و خب من گفتم باید برگردیم به این تعاریف پایی و این تعاریف پایی باعث این شد که من شروع کردم یه مداری نگاه کردم و متوجه شدم که در واقع اون چیزی که ما به عنوان جامعه مطرح میکنیم یا در یک کشوری سامان هر کشوری در هر کجای دنیا در واقع برساختهی سه جامعه هست این سه تا جامعه نه بلکه به نحوی بر هم متکی به هم مرتبط و در هم بسته به یه شیوه پویا و در حرکتی همیشگی به وجود آورنده شرایط کلونی و جامعه و آینه تمام نمای اوزای اون کشور هستن خب این سه جامعه چیه؟ در درجه اول این جامعه، یه جامعه که بهش میگن جامعه اقتصادی اجتماعه اقتصادی economic community. که خب این جامعه هدفش سوداوریه برای بقا سوداوری رشد، منافع خصوصیه منافع انتفاعیه اینا چیا هستن مثل بازار مثل شرکت های خصوصی مثل شرکت های انتفاعی نحاط های اقتصادی بانک ها شرکت های بیمه بانگه های سرمایه مالی تا بگیرید به کسبه خورد از لوله کش و آهنگر و آجر فروش و دلال و سرنافه هر هرچیزی با پول سر کار داره دیگه چیزی که با پول هدف این های که توی جامعه اقتصادی کار میکنن کنن انتفاعی سوداوریه و باراوری کار پرودکتیویتی ورای نمونه و این کارشیده و بخش در واقع دوم این سامان کشور که من میگم جامعه سیاسی جامعه پولیتیکل سوساییتی توی نوشتوهای مختلف بله. بهش اشاره می که این در واقع شامل دولت و از سقوه مغنن قضایی و مجویش به علاوه وزارت خونه ها و کلیه های سیاسی و نیروهای انتظامی و غیره ای که به این دولت در واقع به بخش های مختلف دوائر مختلف دولتی گزارش میدن و در واقع اینا بیشتر بی و همچنین احزاب و سازمان های سیاسی موافق و مخالف بله یعنی در واقع فعالیت و کنشگری اینا توی این جامعه سیاسی و هدف این بخش یعنی هدف تمام این دوائر مختلف از دولتی از سازمان ها و احساب سیاسی و تمام چیزه که حضورتون عرض کردم کسب و حفظ قدرت مانه. یک و بقای سیاسی برای پیش برده سری اهداف و دسترسی. به امتیازات دولتی و قدرت سیاسی هم. و از این طریق در واقع سیاست داخلی و خارجی رو در واقع بهش سویه میدن و را که اون امتیازات خودشون رو در واقع بیشتر کنن این جامعه دومیه که توی سامان هر کشوری هست یه جامعه دیگه ما داریم در سامان هر کشور که توی ادبیات در واقع دی یا روشن فکری بهش میگن جامعه مدنی civil society در واقع این مجموعی از سازمان ها و نحات های غیر انتفاعی non-profit غیر دولتی non-governmental و غیر خصوصی non-private که اینا مدنی هم. از قبیل بنیات های خیلیه. درسته. انجومن های تخصصی غیر میگم. همه اینای که میگم اونایه که غیر انتفاییه. نواد های فرهنگی. انجمن کانون نویسندگان. سازمان های زنان. بونگاه های خدمات محلی. پرورشگاه ها. نمیدونم. مؤسسات حفظ بهداشت اجتماعی. بونگاه های حفظه محیط زیست، اصناف، کلوب های جوانان، خونه های سالمندان، کلوب ها و فضاهای مدنی و عمومی، سازمان های حتی ورزشی، پارک ها، انجمن های حتی وکل های تسخیری، اونی که میگه پاپلک دفندت، که به صورت دیره انتفاعی کار میکنن و رسانه های آلترنتیف گزارشگری، یا حتی اتحادیه ها و هزاران هزار نهادهای دیگر که من بر این باورم بعد از در این پژوهش که این سازمان ها گسترش دهنده دموکراسی اینان هدف اگر توی جامعه اقتصادی هدف سوداوری و رشد و غیر از که حضورتون هست کردم و در جامعه سیاسی هدف کسب و حفظ قدرت و بقای سیاسی و دسترسی به امتیازات دولتی و قدرت سیاسی، هدف این این نهادهایی که توی جامعه مدنی کار بیکنن سیانت و نگهداری منافع بخش های مختلف جامعه مردم مردمه و مثل درختی که برای از شاخه های مختلفه اینا در موقع در حرکتان در هر جامعه آید دکتر ببخشید بس یعنی چیزی که متوجه من متوجه میشم از این سه قسمت جامعه اقتصادی سیاسی و جامعه مدنی به ویت بیشتر این چیزی کاری رو که بیشتر جامعه مدنی انجام میده در راستای دموکراسی رو شما بیشتر بهش به میدید تا اینکه جامعه اقتصادی و جامعه سیاسی بتونه دموکراسی رو برقرار بکنه. درسته؟ بله و نه تنها من اصلا معتقد به اینم که هر آنچه که به امور دستاورد بشری امروز در کشورهای مختلف هست نتیجه درگیر بودن مردم اون کشور یا اون جامعه در چنین نهاتهایی بوده که فشار آوردن به دو بخش دیگه برای اینکه اینا رو قانونی کنن و به سطح دموکراتیک برسونن به خاطر همین در واقع ما باعث یه گذاری بکنیم بریم به اینی که خب وقتی ما میگیم دموکراسی اصلا دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی تفاوتش با آزادی چیه؟ اصلا وقتی ما میگیم اه اه این نهادها در واقع گسترش دهنده دموکراسی هم خب اول واسه بیایم ما تعریف کنیم بگیم دموکراسی ت... یعنی چی؟ خب به نظر شما یعنی چی آزادی با آزادی یعنی چی؟ درست و خب من مایلم اینجا بپردازم بعد از اینی که اون سه جامعه که حضورتون ارز کردم به،, به نفی بر هم تکی interdependent به هم مرتبط interconnected و interrelated در هم بسته بشین خیلی پویا و هم کار میکنن و یه نوع توازونی رو تو، به وجود میارن من اون تعریف, تعریف اول رو دادم حالا برسیدیم به این تعریف دموکراسی و آزادی معنیم. که این چیزهایی که نوشته شده امروزیه من مایدم این تعریف پایی ای امروزی رو اون چیزی رو که بهش نگاه کردم حضورتون هم خب آزادی و دموکراسی در وقت دو پدیده متفاوتن اگرچه اغلب در بسیاری موارد به هم در هر دوی اونها یعنی آزادی و دموکراسی در مباحث حقوق سیاسی و مدنی در هم نهشتن در, در هم شدن اما مطابق تاریخف امروزی پایه‌ای امروزی عقلا دموکراسی به مفهوم یک برابری در مقابل قانون دو تفکیک و توازن سه قوه مقننه و مجریه سه سیستم شفاف رأیگیری چهار احترام به حقوق دیگران پنج قانونمندی فرایند ها شش اجرای قانون و بالاخره هفت سیستم شفاف جلوگیری از فرایندهای فراقانونی و غیر قانونی تعلیم شد یک کتاب بسیار خوبی رو که از اندیشمندان من خوبم. خوب ما در واقع توی ایرانیانی که اساطید دانشگاه هستن در این مورد به تفصیل نوشته شده و من توصیه میکنم به شنبندگان هم بله بله. کتابی از دکتر آصف بیاد بله. به اسم Life as Politics ب... که به زبان بتا... انگلیسی هست بله بله که به, که به تفصیل به این مفاهیم مدرن و امروزی دموکراسی و آزادی میپردازه من غیر از این خب خیلی نوشته شده من سعی کردم تعاریف امروزی یعنی تعریف که توی سه چهار سال گذشته کتاب و اینا بیشتر در موردش برامده این هفت چیز شاخصه رو در مورد تعریف دموکراسی درش میبینیم در صورتی که در صورتی که آزادی به مفهوم پایه امروزی خودش اغلب به معنای رحایی از موانعی که با شعن و شعور و منزلت و وقار و کرامت و آدمی در تزداد میبوشه این موانعی مثل گرستگی، بیماری، جهالت، فقر و ترس. آزادی به این مفهوم یعنی در واقع اون چی رو که ما توی زبانمون میگیم آزادی انتخابات یا میگیم آزادی بیان یا میگیم آزادی گردهمایی یا میگیم آزادی رأیگیری یا میگیم آزادی دین و غیره در تعریف اشتباهیه اینا اغلب حقوق دموکراتیکی سیاسی و مدنی هستند که در قوانین اساسی جامعه دموکراتیک وجود دارن شاید هم به همین دلیل نظام دموکراتیک تا کنون بهترین نظام موجود بشری بوده یعنی من نکته که میخوام به حضورتون از حضورت کنم اینه که این حقوق دموکراتیک در مسیر مبارزات آدم ها در جامعه خودشون برای آزادی به وجود اومدن و قوام گرفتن یعنی اینا برای در مسیر مبارزه برای آزادی و گذشتن از اون موانع که جامعه فشار آورده یه آدم درگیر بودن یه نهاتهایی، هایی سازمان های و اینا رو درخواست کردن خواست کردن و قانونیش کردن تمام بخشیدن بهش شده حقوق دموکراتیک رفته تو قانون اون کشور و به خاطر همین هست که ما جامعه مدنی رو به مفهوم امروزی جامعه قانونمند و دموکراتیک میشتوسیم یعنی حقوق دموکراتیک در اون جامعه قوام گرفته درسته و این اینا تحاریخ پایه یه که باست بهش توجه کرد اما اگر با توجه به این دو تعریفی که بهتون دادم انسانی که برای لغمه نون جون میکنه، ممکنه در مقابل قانون حقوق برابر داشته باشه اما آزاد نیست چون در بند گرستنگی مادری که نمیتونه فرزند بیمار خودش رو به دلیل نداشتن بیمه بهداشتی به نزد پزشکی یا به بیمارستانی ببره برای مثال در همین جامعه آمریکا ممکنه که در جامعه دموکراتیک زندگی کنه اما آزاد نیست چون در بند بیماری گرفتاره درست. انسانی که امکان آموزش های علمی مدرن وی هر کشوری که در نظر بگیری نداشته باشه اگر چه ممکنه در کشورش حقوق دموکراتیک و یا حق آموزش رو در قانون اساسی خودش داشته باشه اما آزاد نیست چون اسیره جهالت جزمندیشان مکتبیه نمیخوان این آموزش های الیتر بشه مهم. در واقع ریشه بگیره انسان بیکاری که نمیتونه ابتداییترین امکانات رو برای خانوادهش فراهم کنه ممکنه در جامعهٔ دموکراتیک زندگی کنه اما آزاد نیست چون در بند فقره جوانی که نمیتونه تفریح کنه در اجتماع نمیتونه بخنده این آزاد نیست چون اغلب گرفتار ترس از جذماندیشان مکتبی و از تنبیه دولتیه. این تاریف پایه‌ای واقعاً واقعا تعریف امروزی هستند که باید از منظری دیگه و به دیگه بهشون نگاه بشه به خاطر این که بتونیم وارد مباحث عیق درشه یک یه نکته خیلی جالبی شما فرمودین معمولا آزادی رو که شما صحبت می از منفی اون صحبت می‌کردید و بعد نتیجه گیری می یعنی از رها شدن از بند برای اگه ما بگیم آزادی. و مخالف با اون رو بگیم بند شاید خیلی نزدیک باشه به تعریف اون بعد حالا دموکراسی شاید آفرین چه آفرین چه نگرش خوبی خواهد. من ممکنه یه چیزی گفته بودم ولی از این زاویه و واقعیته یعنی شما وقتی که در بند انسانی که در بند گرستگی بیماریه جهالته فقره این انسان نمیتونه درست. آزاد باشه درست. بعد دموکراسی هم حالا در هر شرایطی در هر سطوحی در اون جایی که هست ایشون برقرار باشه و حال ایشون هنوز درگیره یه سری مسائل پیش با افتاده است دیگه و و در, این در حرکت این جامعه در حرکت همیشه سعی میکنه که این حقوق دموکراتیک رو در واقع عمیق‌ترش بکنه برای نمونه بهتون بگم ولی. شما شاید شنیده باشید در طول دو روز گذشته در سوپریم کورت آمریکا بحثی سر ازدواج همجنس ها و غیر و از اینجور چیزا هست و خب به عنوان قانون در واقع حمایت از ازدواج انسان ها و اینی که اگر یکیشون فوت بکنه توی دوانین ارس و و غیر و اینا دیگری چه امتیازاتی داره چه حقوقی داره این دهه ها بوده ولی خب امروز جامعه حالا یه دهی هستن همجز، همجزگران غیره، و دارن فشار میارن به صورت سازمان شده میگن که حقوق ما چرا باید در مورد ما مثلا چیز بشه تبعیز باشه من اینجا اون حقوق دموکراتیکی که توی قانونه داره بهش فشار میاد که بسیدتر بشه گستردتر بشه سانهایی بیشتری چیز بگیره و ما باید از توی این ذهنیتی که گویا ما میتونیم از آسمون دولت دموکراتیک به وجود بیاریم و بعد این دولت دموکراتیک هم بیاد یه سری قوانی دموکراتیک میذاره به تموم شد اینطور اینی اتفاقاً آقای اتفاقا دکتور, اتفاقا اتفاقا دکتور. اتفاقا میونی بله میونی که علامتون من یه چیزی باز به خاطرم رسید چون الان این روزها که داریم من و شما صحبت میکنیم چند روزه پیش نمی دونم چهندی این جریان آکادمی گوغوش و به حال داستانای که خانم که اول شد پوشش اسلام به حال اسلامی داشته و اینها و قبل از اون حالا گل شیفته و داستانهایی که خب ماها به حال که شما میگید مثلا مثلا آمریکا ما اون مردم اگر یک نیازی رو میبینن به صورت هم ها خب میتونن برن NGO هست یا میتونن خودشون ایست های سازمان ها تشکیل بودن برن و قوام اون نه یعنی قانون مند کردن اون سیستم و حال پاافشارشون انجام بدن مونتا خب مشکلات ما فکر کنم خیلی عمیق تره چون همه ما پخش و پلا هستیم ایرانی ها و حالا ممچین مسئله هم که پیش میاد یه بحثایی میشه که خیلی هم خوبه یعنی من بحث رو از ما دنبال میکنم میم که بحث جالبی میشه مونتا خب به جایی نمیرسه قبول دارید. در بیشتر موارد نمیرسه به خاطر اینی که همین پراکندگی در واقع اجازه اون دیسکورسی رو که تبدیل به یک جنبش اجتماعی بشه و تبدیل به نهاد بشه تبدیل به سازمان بشه تبدیل به چیزایی بشه مدنی درسته. که خواستهای خودش رو یعنی دیزایرز و درخواست خودش رو یعنی دیمنز داشته باشه و بیاد بگه که اینا چیزایی هن که از نظر قانونی باید در این جامعه جا بیفته ما به خاطر پراکندگی و اون نیروی لازم رو که برایندش بتونه یه وزنه سنگینی بشه و به وجود آقا تحول بشه دستی تا امروز نداشتیم در برهای داشتیم زمان انقلاب بوده اونتا پخته نبودیم درست. که هستیم. و خب این سیر طبیعی خودش رو داره تیمی میکنه و من امیدوارم یعنی به خصوص با توجه به جوانای نسل شما هم جانب. بسیار بسیار امیدوارم به اینی که یک جایی تمام این جریان هایی رو که تکسرگراه هستن و از دیبه های مختلف توی حوزه های مختلف برای در واقع و سیادت و نگهداری منافع بخش های مختلف جامعه فعالیت می‌کنند، مثل روت های که به هم خواهند پیوست میپیوندن و من واقعا به این امیدوارم بله من اگر کارهای شما خب لذت می‌بریم دیگه و اگر این کارهای شماها نباشه های دکتر شاید همین روت های کچیک هم, هم یواش بشه چون در حال خیلی کارهای عمیقی رو دوستانی مثل شما دارن انجام میدن برها با توجه به تجربیات عمیقی که دارین و امیدواریم که حالا همین گفتمان ها بتونه شیطل بگیری یک چوری در بین جوانای ما چون دقت میکنید حالا من توی شبکه اجتماعی هم بعض موقع نگاه میکنم میبینم که حالا فیسبوک و اینها ها نمیدونم شما حالا باش چیز هستین یا درگیرش هستین من از کم کمبوده وقت دارم میتجم. و اغلب دوستانی رو که روی فیسبوک و این هستن میگن هستی بو خیر روی این ها چون من گرفتار شدن نینی <تصفيق> از برختشون نمیدن نمیدن نمیدن نمی نه همینه که اون بحث حالا به حال وقت و اینها که به کنار بحث به نظر من حتی از اون شاید میشد و شاید بشه هنوز کارهای خیلی بزرگی هم همون جاها انجام داد یعنی همونجا هم گفت حالا میره طرف مثلا عکس می بینه یا مثلا به حال وقتشون رو وقتشونو میگذرونن و اینها ولی خب خیلی کارهای دیگه هم می شه کرد یعنی یک بستر فراهم کرده اونجا که هر کس میتونه نظرش رو بگه کس حرف می بزنه میتونه کاری تولید بکنه اگه میتونه یا توی بحث شرکت بکنه خب خیلی مسئله برای ما فرهنگ مجا افتاده دیگه خیلی خیلی ها اصلا الان دا همون فیسبوک می خیلی از این شرکت های بزرگ دارن حالا اگر این بخش هایی که شما شمردین رو اونجا بخوایم نگاه بکنیم می‌بینیم که کار اقتصااجشون آوردن اونجا خیلی راحت یا خود فیسبوک چقدر داره درآد دارد یا کارهای سیاسی که اون تو انجام میشه یا حتی شکل میدن به جامع مدنی این بحث که شما میفهمید NGO و با اقسام این سازمان ها اونجا هستن و فن پیدا میکنن یا طرفتارهای خودشون رو پیدا میکنن و جهدهیشون رو انجام میدن حالا نه, نه که منفی و حالا کاری به منفی و مثبتش نداریم ولی به حال تمو... چیزی که من دوست دارم بدونم این که این مباحث رو چون برحال خیلی خیلی تر باید بررسی بشه ولی چیجوری میشه که این مباحث رو یک کاری کرد که خود بچه های ایران هم یه جورایی تو شرکت بکنن یعنی یه جورایی دنبالش برن مثل محققی که هست که یک موضوع رو میگیره حالا دیگه اینقدر میره ترتوی قضیه استرا در میاره همه چی رو میتونه خودش ولی خب ما این رو انگیزه ها رو نداریم چرا نداریم آیتون من سعی میکنم برداشت خودم رو بدم داریم در بخش داریم در بخش نداریم. ما توی یه فاز خیلی جالبی در دنیای مدرن داریم به سروی و که ابزار مدرن اشاره پیدا کرده و به یه نحوی باش آشنا شدیم و روش انرژی میذاریم و برای نمونه همین فیسبوکل که شما فرمودید خیلی رو درگیر خودش کرده البته بر این باورم که در این فازی رو که هستیم این ابزار چون من, من تکنولوژی درس میدم من شیفته ابزارهای نوین هستم به عنوان نرده بهشون نمیگم من معتقد مت... به اینم که در این فازی رو که هست اون استفاده امی و بنیانی روی که پوتانسیلشو داره ازش نمیشه درست. بیشتر در حد فضولیه یعنی شاید 80 درصد بیشتر اون چیزی که توی پیسبوک اتفاق میفته در حد اینکه که کی چی کار میکنه و دیشب yes. کدوم پارتی رفتن و چه کردن و غیره و وقت وقت بسیاری رو میگیره و نوعی هم در فاز فعلیش میگم تحقیق خواهد کرد و به خاطر اینکه که سرختنده و کنجکاوی بدوی بشره ببینید فضولی عوامون ناس در فرهنگ امه شکل بدوی و ناپخته کنجکاوی بشره پژورش های علمی صورت پخته و والای همون کنجکاوی این ابزار هایی رو که امروز ما در واقع به وجود آوردیم و تحت نامه. رسانه‌های های اجتماعی و غیره داریم بهش اشاره بکنیم شبکه های اجتماعی فعلا در حد همون فضولی عوامون ناسه. درسته. یه درصد بسیار بسیار پایینشون هست که داره استفاده درست ازش میشه از اون گذشته استفاده ناخوشایند هم ازش داره میشه برای جاسوسی و نمیدونه از جور چیزا و بالاخره این گذر خواهد کرد و وقتی که تبدیل بشه به یه ابزاری که برای سازماندهی و سازمانیابی ازش استفاده بشه همونطور که در ابتدا شد یعنی قبل از اینکه فیسبوک و اینا همیشه تا شبکه های ابتدایی اجتماعی در شهرون های معدنی آمریکا مثلا در سیاتل که دوست. حدود ده دوازده سال پیش اتفاق افتاد یا حتی در جنبش که در اروپای شرقی غیره استفاده می شود. خب یه چیز طبیعیه اون جامعه سیاسی یعنی دولت و نهاتاش و غیره این رو چون به عنوان تهدید می بینه، شروع میکنه به چها کردن قطش کردن جاسوسی کردن آدمها شناسایی کردن و غیره و یه بخش دیگه هم خدا آدم ها استفاده میکنن برای فضولی ازش یعنی بخش امدهی رو که داره اتفاق میفته توی اینا اینه و اجازتی این رو نمیده که این ابزارهای جدید که میتونن پتانسیل بسیار زیادی برای سازماندهی و سازمانیابی جامعه و به جوانان جامعه بدن بازی کنن در حال فعلی ولی این هم داره گذر پیدا میکنه یعنی داریم, داریم ما میریم به طرف جلو و من فکر میکنم که از توش چیزه بسیار خوبی بیرون خواهد من و... یعنی امیدوارم هستم ده. و من حالا چون وقت نداریم خاید. خواستم اینجا سخن رو به پایان ببرم خاید. فقط بهتون بگم آقای مختارزاده که بعد از این دو تعریف پایهی خیلی مایلم بعد بگم که خب ما راجبه این نهادهای سه جامعه صحبت می‌کردیم شاید در صحبت بعدی بهتر باز کنیم در رسانه‌ها من خیلی مایلم چون علی حتماً آره الان عرض به وجودتون که دقیقا فکر کنم نزدیک 30 دقیقه ای شد صحبت می‌کردیم عرض به وجودتون که شما به حال مفاهیم دموکراسی رو تعریف ابتداییش رو فرمودین بحثهای جامع مدنی و کمی هم رسانه ها و جامع رو تعریف کردید به عنوان اقتصادی و بحثهای مربوط به اون و سیاسی و دولتی و جامعه مدنی که بسا همه اینها ها تعریف خاصه خودش رو داره عرض به حضورتون که فکر می برای اولین جلسه که دوستانم آشنا بشن با این مفاهیم شاید علاقمند باشن یه مقدار بیشتر خودشونم شاید ریسرچ بکنن یا تحقیق بکنن راجبی تک تک این موضوعات بعد وارد به قول شما وارد نقشه رسانه ها یا مفاهیم عمیق‌تر اینها بشیم شما با این بداخت... با چی به حالیه حالیه چون بعد ب... یه مقداری هم به آمار نگاه کردم درست. در مورد این کشورهایی که ما دموکراتیک میدونیم و حضور این نهادهای مدنی درصد بالاتری از حضور نهادهای مدنی درشون و درگیر بودن جامعه که فکر می‌کنم خیلی چیزا ما میتونیم ازش یاد بگیریم از کشورهایی که تونستن خودشون رو به فاز بالاتری از دموکراسی برسونم بسیاره بسیاره من بخش اول رو اینجا به پایان میرسونم و عرض به حضورتون که همه دوستان رو صدای منو میشنوید ایدیتور بله بله بله, بله, بله. کردم که اصطلاح غلط شد نخواهش میکنم بس من این جلسه اول رو به پایان می‌رسونیم دوستان عزیز با جناب وای دکتر ریموند رخشانی صحبت کردم استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در مورد پژوهشی که ده ایشون در چیدان انجام دادن در مورد مفاهیم دموکراسی جامعه مدنی و نقش رسانه‌ها خیلی لوکینای دکتر روز شماست و تا نه فرس اولی حتماً آید بشوارم صدا